بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اصرار نه آن باغش زان باده که در میکده کده عشق فروشند ما را دوس ساغر بده و گو رمضان باش در خرقه چ آتش زدیه عارف سالک جهدی کن سر حلقه رندان جهان باش دلدار که گفتا به تو هم دل نگران است کو میرسم اینک به سلامت نگران باش خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش ای درج محبت به همان مهر و نشان باش تا بر دلش از قص قوارین ننشیند ای سیل سرشک از عقب نام روان با حافظ که حوست می کندش جام جهانبین گو در نظر آصف جمشید مکان با